شکار گوزن ده سال بر دشت هایی که میشناسیم گذشت، اوریون بزرگ شد و هنر اوت را آموخت و تیزبینی ترل را به دست آورد و با جنگل ها و سراششیب ها و دره آشنا شد. همان گونه که پسری دیگر میداند چگونه اعداد را در اعداد دیگری ضرب کند یا اندیشه ها را از زبانی غیر از زبان خودش بیرون بکشد و با واژه‌های زبان خودش بیان کند و کمتر از توانایی‌های جوهر سردر در می‌آورد از اینکه جوهر چگونه می‌تواند اندیشه‌های انسانی مرده را برای شگفت زده کردن سالهای بعد ثبت کند و از رویدادهایی سخن بگوید که به تمامی از میان رفتهاند و برای ما آوایی از ماورای تیرگی زمان باشد و چیزهای شکننده بسیاری را از فرسایش ادوار سخت در امان بدارد و یا حتی از میان صده های گذران ترانه ای سروده شده بر لبهایی را برای ما بیاورد که مدتها قبل بر روی تپه های فراموش شده مرده است. از جوهر کم می‌دانست، اما جای پای مبهم گوزنی ماده بر زمین خشک برایش همچون راهی روشن بود. و هیچ رویدادی در جنگل از چشم او دور نمی ماند و تمام آواهای جنگل برای او سرشار از معانی روشنی بودند همان گونه که علایم و شکرهایی که ریاضیدانی به هنگام تقسیم میلیونهایش بر دهها ها و یازده ها و دوازده ها میکشد برایش معنای روشنی دارند با توجه به خورشید و ماه و باد میفهمید که چه پرندگانی به جنگل وارد خواهند شد تنها کمی بعد از جانوران جنگل که منطق یا روحیه انسانی ندارند و بسیار بیشتر از ما میدانند در میافت فصلی که در پیش است سخت یا معتدل خواهد بود و بدین ترتیب به جایی رسید که هر لحظه حال و هوای جنگل را حس می‌کرد و همچون یکی از جانوران جنگلی می توانست وارد پناهگاه سایه گستر سرزمین‌های جنگلی شود و این کار راهنگامی که به سختی چهارده سال داشت میتوانست انجام دهد و آدمهای بسیاری یک عمر میگذرانند و هرگز نمی توانند بدون برهم زدن حال و هوای راه های سایه گستر جنگل وارد آن شوند چون ممکن است هنگامی وارد جنگل شوند که باد بر پشتشان میبزد به شاخه ها برخورد کنند پا بر روی ترکه ها بگذارند صحبت کنند سیگار بکشند یا گامهای سنگین بردارند و با آمدنشان فریاد زاغهای کبود بر میخیزد و کبوتران درختان را ترک میکنند خرگوشها به پناهگاههایشان هایشان و جانورانی بسیاری که نمیشناسند نرم و پاورچین از سر راهشان دور میشوند. و اوریون نیز همچون اوت با تیر و کمانش توانست توده ای پوست گردآورد. و شاخهای بزرگ گوزن را در راه روی قلعه در میان شاخهای قدیمی به دیوار بیاویزد که دوره طولانی جایگاه انکبوت بود این یکی از نشانه بود که مردم ایرل را وادار میکرد. او را اندکندک اندک فرمان خود بدانند چون هیچ خبری از آلوریک نبود و تمام فرمان رواهای قدیمی ارل شکارچی گوزن بودند و نشانی دیگر جدا شدن جادوگر زیراندریل از او و بازگشتش به فراز تپهش بود و اکنون اوریون در غلعه تنها میزیست و جادوگر بار دیگر در کلبه اش زندگی میکرد جایی که کلمهایش بر تپه های بلند تندر گذر میرویدند و اوریون تمام زمستان را در جنگل به شکار گوزنها گذراند و که بهار فرارسید کمانش را کنار گذاشت اما هرچند فصل ترانه و گل‌ها بود همچنان در اندیشه شکار بود و به جستجوی سگهای تازی باریک و بلند از خانه‌ای به خانه دیگر می‌رفت و گاهی سگی را می‌خرید و گاه صاحبش قول می‌داد در روزهای شکار آن را به او قرض دهد بدین ترتیب اوریون گروهی از تازی‌های مو بلند تشکیل داد و مشتاقانه به انتظار گذر بهار و تابستان ماند و در یک غروب بهاری هنگامی که اوریون به سگهایش رسیدگی میکرد، هنگامی که اغلب روستاییان کنار در خانه به بلندای غروب مینگریستند مردی از راه رسید که هیچکس او را نمی شناخت. از پشت تپه ها می آمد، خود را در لباس بسیار کهنه پیچیده بود لباسها چنان به تنش چسبیده بودند که گویی همواره بر تنش بودند و انگار این لباسها بخشی از جسم او و در این حال بخشی از زمین هستند چون همه با خاک تپه های بلند به رنگ قهوهی تیره در آمده بودند و مردم متوجه خرامش نرم این راه روی نیرومند و فرسودگی در چشم شدند و هیچ کس او کیست و سپس زنی گفت این واند است که در گذشته تنها پسرکی بود و همه گرد او حلقه زدند چون به راستی خود واند بود که بیشتر از ده سال پیش گوسفندها را ترک کرده بود تا با آلوریک به جایی برود که هیچ کس در ایرل نمی شناخت گفتند سرور ما کجاست؟ و نگاهی از فرسودگی در چشمهای واند پدیدار شد گفت جستجویش را ادامه میدهد پرسیدند به کجا؟ گفت به سوی شمال هنوز در جستجوی سرزمین پریان است. پرسیدند، چرا ترکش کرده ای؟ گفت، امیدم را از دست دادم. بیش از آن نپرسیدند، چون همه می دانستند جستجوی سرزمین پریان به امید استواری نیازمند است و بدون آن نمی توانستند هیچ پرتایی از کوه آبی و بیدگرگونی سرزمین پریان ببینند؟ و سپس مادر نیو دوان دوان آمد و گفت واقعا واند است؟ و همه گفتند بله واند است و هنگامی که همه با یکدیگر دیگر واند پچ و پچ می کردند که سالها و سرگردانی چقدر او را دگرگون کرده مادر نیو به او گفت از پسرم بگو و واند پاسخ داد او جستجو را رهبری می کند سرورم به هیچ کس بیشتر از او اعتماد ندارد و همه شگفت زده شدند و اما هیچ دلیلی برای شگفت زدگی وجود نداشت این یک جستجوی دیوانهوار بود اما فقط مادر نیو شگفت زده نشد میدانستم اینگونه خواهد شد میدانستم و سرشار از خوشنودی جرفی شد برای هر شخصی رخدادها و فصلهایی مناسب خودش وجود دارند هرچند تعداد کمی از این فصلها و رویدادها میتوانستند با خلق دیوانه نیو تطبیق کنند، اما در هر حال سرانجام جستجوی آلوریک به دنبال سرزمین پریان پیش آمد و نیو هم شغل ویژه خودش را یافت. و هنگامی که در دیر هنگام غروب مردم ایرل با واند صحبت می کردند، داستانهای از اردوهای بسیار، راه های بسیار و داستانی از بیهودگی سرگردانی به دنبال آلوریک شنیدند، که همچون روحی سال پشت سال افقها را شکار می کرد و گاهی از میان اندوه ناشی از آن سالهای بی به هنگام بازگو کردن ماجراهای ای که در اردوشان رخ داده بود لبخندی در چهرهش می درخشید اما همه این ماجراها توسط کسی گفته می شد که امیدش را به آن جستجو از دست داده بود نباید این چونین با شک و با نیش خند از این جستجو سخن گفته می شد؟ چون، چون این جستجوی ای تنها می تواند توسط کسانی بازگو شود که از شکوهش آتش گرفتهاند از درون مغز نیو یا بلاحت زند ماه گرفته می توانیم خبرهایی از آن جستجو به دست آوریم که ذهن ما را با کرسوی از معنای آن روشن کند؟ اما نه از داستانی که راست، یا به توسط کسی بازگو می شود که خود جستجو هم دیگر نمیتواند به سوی خود فرایش بخواند. ستارگان بیرون آمدند و واند هنوز داستانهایش را می گفت و مردم که دیگر شنیدن درباره آن جستجوی ناامیدانه برایشان جذاب نبود یکی یکی به خانه هاشان بازگشتند اگر آن قصه توسط کسی گفته شده بود که هنوز ایمانی را که داشت که آوارگان آلوریک را هدایت می کرد. پیش از این که مردم بازگو کننده ی قصه را ترک کنند، نور ستارگان چنان ضعیف آسمان چنان روشن می شد که سرانجام یکی می گفت عجب، صبح شده و تا آن هنگام نمی رفتند. و روز بعد واند دوباره به سراشی به تپه ها و گوسفندها برگشت و دیگر خود را با جسجوهای خیالی به دردسر سر نگنداخت. و در طول آن بهار مردم دوباره درباره آلوریک سخن گفتند گاهی از جسجوی او شگفت زده میشدند گاهی از لیرازل می گفتند و می کوشیدند حدس بزنند کجا رفته و حدس بزنند چرا و چون نمی توانستند حدس بزنند قصه ای ساختند که همه ماجرا را تفسیر کند و این قصه چندان دهان به دهان گشت که همه باورش کردند و بهار گذشت و آلوریک را فراموش کردند و از فرمان اوریون پیروی کردند و سپس یک روز که اوریون همچنان در انتظار سپری شدن تابستان بود و دلش با روزهای سرد زمستان بود و رویای شکار بر سرزمین های بالای دره را می دید رانو که پیش از سراشیب ها پایین آمد و از راهی که واند آمده بود گذشت و به ایر وارد شد رانوک با قلبی که سرانجام آزاد شده بود و افسردگی که از میان رفته بود بدون پریشانی، بیخیال، خوشنود، تنها مشتاق استراحت پس از آوارگی بلندش بدون اینکه دیگر آه بکشد از راه رسید و هیچ چیز جزی نمی توانست ویریا دختری که رانوک را دوست داشت او را وادار کند به او اهمیت بدهد بنابراین پایان داستان این بود که با او ازدواج کرد و او هم دیگر در جسجوی خیالی سرگردان نشد. و هرچند تا آن زمان که از بلندای روزها کاسته شد و باد غریبی برگ ها را لمس کرد، برخی از مردم غروبهای بسیاری به سرزمینهای بالای درمینه گریستند و برخی باد به دورترین انهناهای تپه خیره می شدند اما دیگر از اعضای گروه جستجوی آلوریک را ندیدند که از راهی باز گردد که واند و رانوک آمده بودند و هنگامی که برک ها به شگفتی از سرخی و تلایی تبدیل شدند مردم دیگر به آلوریک نیندیشیدند و از پسرش اوریون پیروی کردند و در همین فصل، اوریون یک روز پیش از دمیدن سپیده برخواست و شیپور و کمانش را برداشت و به سراغ سگهای شکاریش رفت که از شنیدن صدای پاهایش پیش از روشناییش شگفت زده شدند. صدای پایش را در خواب شنیدند و بیدار شدند و برایش او, او کردند و اوریون آزاد و آرامشان کرد و آنها را به سوی تپه ها راند. هنگامی که به عظمت خلوت تپه ها وارد شدند که گوزنها بر سبززارهای های میچرند و آدمیان هنوز در خوابند اوریون و سکهایش دران بام داده نمناک وحشی سبک بالانه با هم به سوی سراشیب های تابناک رفتند و اوریون در هوایی که به هنگام گام زدن در میان آویشن های دیر هنگام شکوفه داده فرو میداد عطر سنگین آویشن را استشمام می کرد بویه تمامی عطرهای سرگردان بامداد به مشام سگها می رسید و اوریون جانورانی وحشی را که در تاریکی بر روی تپه به هم رسیده بودند و جانورانی را که به هنگام سفر از تپه گذشته بودند و جایی را که پس از فرا رسیدن روز و پیدایش خطر انسان به آنجا رفته بودند حدس میزد و می جویید. اما همه اینها به تمامی برای سگها روشن بود و به برخی از عطرهایی که با شامه تیزشان استشمام میشد، توجه می کردند و برخی از عطرها را نادیده می گرفتند و در حقیقت در جستجوی یک عطر بودند اما آن روز صبح گوزنهای بزرگ سرخ در تپه ها نبودند و اوریان سگها را به دور از در رای راند. اما آن روز هیچ گوزنی ندیدند و با خود بویی را نیاورد که سگهای نگران میجستند و همچنین نتوانستند این بو را پنهان شده در هیچ سبزه یا برگی بیابند و غروب فرا رسید و اوریون به هنگام سرخ و عظیم شدن خورشید با شیپورش سگهایش را فرا تا به خانه بازگرداند و زعیفتر از تنین شیپور خودش و از دور ها و از آن سوی تپه ها و مه اما با وضوحی آشکار صدای آهنگ سیمین شیپورهای سرزمین پریان را شنید که همواره به هنگام غروب صدایش می کردند. اوریون و سگهایش با همدلی شگرف ناشی از خستگی مشترک در تاریکی و در زیر نور ستارگان به خانه بازگشتند. سرانجام پنجره های خانه ارل خوش آمد بویان به آنها چشمک زدند. سگ‌ها ها هاشان بازگشتند و غذا خوردند و به خواب راحتی فرو رفتند اوریون به غلعه اش رفت او هم غذا خورد و سپس نشست و به تپه ها و سگ ها و آن روز اندیشید خستگی ذهنش را به جایی رسانده بود که دیگر به هیچ چیز اهمیت نمیداد. و روزهای بسیاری چنین گذشت و سپس در یک سپید دمی جالگون به هنگام گذشتن از یک ردیف تپه گوزنی را در پایین تپه دیدند که دیر هنگام و پس از رفتن گوزنهای دیگر می چرید. سگها فریادی شادمان سر دادند. گوزن با چابکی بر روی سبزه ها دوید. اوریون تیری انداخت که به خطا رفت. همه این ماجراها در یک دم رخ داد. و سپس سگها سرازیر شدند و باد مواج از پشت سرشان وزید و گوزن دور می شد. گویی هر یک از پاهایش بر جوی بارهایی کوچک و رقصان قرار داشت. و نخست سگها تندتر از اوریون میدویدند، اما اوریون هم به اندازه آنها خستگی ناپذیر بود، و گاهی راههای های را پیش میگرفت تا هنگامی که به جویباری رسیدند و نیازمند یاری خرد انسان ماندند خود را نزدیک آنها نگاه داشت. و اوریون با خرد انسانی خود یاریشان کرد و بار دیگر به راه افتادند. و همچنان از تپه به تپهی دیگر می‌رفتند بامداد سپری شد و هنوز گوزن را دوباره ندیده بودند و بعد از ظهر هم با خستگی گذشت و سکها با مهارتی به شگفتی جادو هنوز همه گام‌های گوزر را دنبال می‌کردند و اوریون نزدیک غروب گوزن را دید آهسته و از میان سبزه های مرطوب که در پرتوهای خورشید پایین آمده می‌درخشیدند از سراشیبی تپهای بالا میرفت رفت سگهایش را تشویق کرد و سگها سه چهار درده کوچک گوزن را تعقیب کردند اما گوزن در پایین سومین دره برگشت و در میان سنگ ریزه های جویباری به انتظار سگها ماند و سگها آمدند و او او کنان احاتش کردند و به شاخهای بیباکش نگریستند در نور غروب او را به زمین انداختند و کشتند اوریون با لذتی بسیار شاخش را برید و قلبش را بیرون آورد بیش از این چیزی نمی‌خواست. از تپه هایی که نمی شناخت شاید از آن سوی غروب آوای شیفورهای سرزمین پریان با آهنگی شادگون پاسخش دادند گویی آنها هم شاد شده بودند یا شادی او را تقلید می سفر به دنیای پر رمز و راز